مصنوی معنوی مولوی برنامه هفتاد و ششم صفت آن مسجد که مهمان کش بود و آن آشق مرگجوی لا که درو او مهمان شد. یک حکایت گوش کن اینک پی مسجدی بود بر کنار شهر ری هیچ کس در وی نخفتی شب زبیم که نفرزندش شدی آن شب یتیم بس کن در وی غریب اور رفت سابدم چون اختران در گور رفت خیشتن را نیک از این آگاه کن صبح آمد خواب را کوتاه کن هر کسی گفتی که پریانند تندندر رو مهمان کشان با تیغ کند آن دگر گفتی که سحرست و و تلسم کین رسد باشد ادو جان و خسم آن دگر گفتی که برنه نقش فاش بردرش کی مهمان اینجا مباش شب مخست اینجا اگر جان بایدد ورنه مرگ اینجا کمین بکشایدد وان یکی گفتی که شب قفل نهید غافل ای کاید شما کم ره دهید مهمان آمدن آن مسجد تا یکی مهمان در آمد وقت شب کو شنیده بود آن سیت عجب از برای آزمون می آزمود زن که بس مردانه و جانسیر بود گفت کم گیرم سر اشکم بی رفتهگیر از گنج جان یک حبه صورت تن گو برو من کیستم نقش کم ناید چون من باقیستم چون نفختو بودم از لطف خدا نفخ حق باشم زنای تن جدا تا نیفتد بانگ نفخش این طرف تا رهد آن گوهر از تنگین صدف چون تمناو موت گفت ای صادقین صادقم جان را برفشانم برین ملامت کردن اهل مسجد مهمان آشق را از شب خفتن در آنجا و تهدید کردن مرور را قوم گفتندش که هین اینجا مخاسب تا نکوبد جان ستاند همچو کسب که غریبی وو نمیدانی زهال کن در اینجا هرکه خفت آمد زوال اتفاقی نیستین ما بارها دیده ایم و جمعه اصحاب نها هر که آن مسجد شب مسکن شدش نیم شب مرگ هلاهل آمدش از یکی ما تا به صد این دیده ایم. نه به تقلید از کسی بشنیده ایم. گفت اد دین و نصیحه آن رسول، آن نصیحت در لغت ضد غلول، این نصیحت راستی در دوستی، در غلولی خاین و سگپستی به خیانت این نصیحت از وداد، می مگر مگرد از عقل و داد. جواب گفتن عاشق آزلان را گفت او ای من بیندم از جهان زندگی سیر آمدم منبل ام زخم جو و زخم خوا آفیت کم جوی از منبل منبل نی کو بود خود برگ جو منبل هم لاعبالی مرگ جو منبل نی کو بکف پول آورد منبل چست که این پل بگذرد آن نکو بر هر دکان برزند بلجهد از کون و برزند مرگ شیرین گشت و نقلم زین سرا چون قفص هشتن پریدن مرغ را آن قفس که هست عین باغ در مرغ می بیند گلستان و شجر جوق مرغان از برون گرد قفس خوش همی خانند زازادی قصص مرغ را اندر قفص زن سبززار نی خورش ماندست نه صبر و قرار هر سوراخ بیرون می کند تا بود بند از پا برکند چون دل و جانش چون این بیرون بود آن قفص را در گشایی چون بود نه چنان مرغ قفس در اندوهان گرد بر گردش به حلقه گربگان کی بود او را در این خوف و حزن آرزوی از قفس بیرون شدن او همه خواهد که این ناخوش حسس صد قفس باشد گرد این قفس عشق جالینوس بر این حیات آنچنان که گفت جالی نوس راد از هوای این جهان و از مراد راضیم که از من بماند نیم جان که زکون از بینم جهان گربه می بیند گرد خود قطار مرغ شایست گشته بود است از مطار یا عدم دیده است غیر این جهان در عدم نادیده او هشر نهان چون جنین کشمه کشد بیرون کرم می گریزد او سپس سوی شکم لطف رویش سوی مصدر می کند او مقر در پشت مادر می کند ای عجب بینم به دیده این مقام یا دری بودی در آن شهر وخم که نظاره کردمی اندر رحم یا چو چشمه سوزن را هم بوده که ز بیرونم رحم دیده شده آن جنین هم غافل است از عالمی همچو جالی نوز او نامحرمی او نداند کان ان که هست آن مدد از عالم بیرونی است. آنچنان که چار انصر در جهان صد مدد آرد ز شهر لامکان. آب و دانه در قفص گریافت است. آن ز باغ و عرصه در تافت است. جانهای انبیا بینند باغ، زین قفس در وقت نقلان و فراغ پس ز جالینوس و عالم فارغند همچو ماه اندر فلک ها بازغند ورز جالینوس این گفت افتراست پس جوابم بهر جالینوس نیست این جواب آن کس آمد کین بگفت که نبود استش دل پرنور جفت مرغ جانش موش شد سوراخ جو چون شنید از گربگان او ارجو، جو زان سبب جانش وطن دید و قرار ان در این سوراخ دنیا موشوار هم در این سوراخ بنایی گرفت در خور سوراخ دانایی گرفت. پیشهایی که مرو را در مزید کند در این سوراخ کارایت گزید زان که دل برکند از بیرون شدن بسته شد راه رهیدن از بدن. انکبود ار طبع انقا داشتی، از و آب خیمه کای افراشتی گربه کرده چنگ خود اندر قفس نام چنگش درد و سرسام و مغص گربه مرگ و مرز چنگال او میزند بر مرغ و پر و بال او گوشه گوشه می جهد سوی دوا مرگ چون قاضی است و رنجوری گواه چون پیاده قاضی آمد این گواه که همه خاند تو را تا حکمگاه می میخواهی از وی در گریز گر شد وگر گفت خیز جستن مهلت دوا و چاره که زنی بر خرقه تن پاره ها عاقبت آید صبح خشموار چند باشد مهلت آخر شرم دار عذر خود از شه بخا ای پر حسد پیش از آن که آنچنان روزی رسد و آن که در ظلمت براند بارگی برکند زن نور دل یک بارگی می گریزد از گوا و مقصدش کان گوا سوی قضا می خاندش دیگر باره ملامت کردن اهل مسجد مهمان را از شب خفتن آن مسجد قوم گفتندش مکن جلدی براو تا نگردد جامه و جانت گراو آن ز دور آسان نماید بهنگر که به آخر سخت باشد رهگذر خیشتن آویخت بس مرد و سکست وقت پیچا پیچ دستاویز جست پیشتر از واقع آسان بود در دل مردم خیال نیک چون در آید اندرون کارزار آن زمان گردد آن کس کارزار چون نشیری هین من تو پای پیش کن اجل گرگست و جان توست میش ورز ابدالی و میشت شیر شد ایمنا که مرگ تو سرزیر شد کیست ابدال آنکه او مبدل شود؟ خمرش از تبدیل یزدان خل شود لیک مستی شیرگیری وزگمان شیرپنداری تو خود را هین مران گفت حق زهل نفاق ناسدید بحث هم ما بینهم هم شدید در میان همدگر، مردانه اند. در غذا، چون عورتان خانه اند. گفت پیغمبر سپهدار غیوب، لا شجاعه یا فتا قبل الهروب، وقت لاف غزو مستان کف کنند، وقت جوش جنگ چون کف بیفنند وقت ذکر غزب شمشیرش دراز وقت کر و فر تیغش چون پیاز وقت اندیشه دل او زخم جو پس به یک سوزن تهی شد خیک او من عجب دارم ز جویای صفا کورمد در وقت سیقل از جفا عشق چون دعوی جفا دیدن گواه چون گواهت نیست شد دعوی تباه چون گواهت خواهد این قاضی مرنج بوسده برمار تا یابی تو گنج آن جفا با تو نباشد ای پسر بلکه با وصف بدی اندر تو در برنامت چوبه که آن را مرد زد برنامت آن را نزد برگرد زد گر بزد مراسب را ان کی نکش آن نزد بر اسب زد بر سکسکش تازه سکسک وارهد خوش خوشپی شود شیره را زندان کنی تا می شود گفت چندان آن مکرا را زدی چون نترسیدی ز قهر ای زدی گفت او را کی زدم ای جان دوست من براندیو زدم کو اندروست مادرر گوید تو را مرگ تو باد مرگ آن خو خواهد و مرگ فساد آن گروه کس ادب بگریختند، آب مردی و آب مردان ریختند آزلانشان از بقا واراندند تا چونین هیزا مخنس ماندند لاف و غره خارا کم شنو با چونین ها در صفه هیجا مراو زن که زادو کم خبالا گفت حق که رفاق سوست برگردان ورق که گریشان با شما هم راه شوند غازیان به مغز همچون که شوند خویشتن را با شما هم صف کنند پس گریزند و دل صف بشکنند پس سپاه اندک بی این نفر به که با اهل نفاق آید حشر هست بادام کم خوشبیخته بهز بسیاره به آمیخته تلخ و شیرین در جغا جغ یک شیند نقص از آن افتاد که همدل نیاند. گبر ترسان دل بود کو از گمان میزید در شک زهال آن جهان میرود در ره نداند منزله گام ترسان می نهد اما دله چون نداند ره مسافر چون رود با ترددها و دل پرخون رود هر که گوید های این سو راه نیست او کند از بیم آنجا وقف و ایست ور بداند ره دل باهوش او کی رود هرهای هو در گوش او پس مشو همراه این اشتر دلان زانکه وقت زیق وبیماند آفلان پس گریزند تو را تنها هلند گرچه اندر لاف سهر بابلند توز رعنایان مجو هین کارزار توز تاووسان مجو سید و شکار تاب تاووس است و وسواست کند دم زند تا از مقامت برکند. گفتن شیطان قریش را که به جنگ احمد آید که من یاری ها کنم و قبیله خود را به یاری خوانم و وقت ملاقات صفین گریختن. همچو شیطان در سپه شد صد یکم خاند افسون، کننی جارون لکم چون قرائش از گفت او حاضر شدند هر دلشکر در ملاقات آمدند دید شیطان از ملایک اسبه سوی صف مؤمنان اندر رهه آن لم لمتروها صف زده گشت جان او زبی آتش تشکده پای خود واپس کشیده می که همی بینم سپاه من شگفت. ای اخاف الله مالی من هو اون انی اینی ارا مالا تر گفت حارس ای سراق شکل هین دی چرا تو می نگفتی این چونین؟ گفت این دم من همی بینم حرب گفت می بینی عرب می نبینی غیر این لیک ای تو ننگ آن زمان لاف بود این وقت جنگ دی همی گفتی که پایندان شدم که بودتان فتح و نصرت دم بدم دی زعی ملجایش بودی ای لعین و این زمان نامرد و ناچیز و مهین تا بخوردیمان دم تو و آمدیم تو به تون رفتی و ما هیزم شدیم چون که حارس با سراقه گفت این از اتابش خشمگین شد آن لعین دست خود خشمین ز دست او کشید چون ز گفت اوش درد دل رسید سینه را کفت شیطان و گریخت خون آن بیچارگان زین مکر ریخت چون که ویران کرد چندین عالم او پس بگفتین نیبریون من او، کفتن در سینه اش پس گریزان شد چه حیبت تاختش نفس و شیطان هر دو یکتن بودند در دو صورت خیش را بنمودند چون فرشته و عقل کیشان یک بودند بهر هاش دو صورت شدند دشمن داری چونین در سر خیش مانع عقل است و خسم جان و کیش یک نفس حمله کند چون مار، پس به بسوراخ گریزت در فرار در دل او سوراخ ها دارد کنون سر ز هر سوراخ می آورد برون نام پنهان گشتن دیو از نفوس و آن سوراخ رفتن شد خنوس که خنوسش چون خنوس قنفذ است چون سر قنفوز ورا آمد شده است که خدا آن دیو را خناس خواند کو سر آن خار پشتک را بماند می نهان گردد سر آن خار پشت دم به از بیم سیاد درشت تا چو فرصت یافت سر آرد برون زین چون این مکری مارش زبون گرنه نفسان در درون راحت زدی رهزنان را بر تو دست کی بودی زان عوان مقتضی که شهوت است دل اسیر هرس و آز و آفت است زان عوان سر شدی دزد و تباه تا اوانان را به قهر توست راه در خبر بشنو تو این پند نکو بین جنبیکم لکم اعدا ادو تمتراق این ادو مشنو گریز کو چو ابلیس است در لج و ستیز بر تو او از بحر دنیا و نبرد آن عذاب سرمدی را سهل کرد. چه عجب گرمرگ را آسان کند. عوض سهر خیش سط چندان کند. سهر کاهی را به سنت که کند. باز کوهی را چکاهی میتند. زشتها را نغز گرداند بفند. نغزها را زشت گرداند به زن. کار سهرین است. کو دم می زند. هر نفس قلب حقایق می کند. آدم ای را خر نماید ساعته. آدم سازد خری را وایت، این چنین درون تست و سر، این فلوسواس سهرن مستطر. اندران عالم که هستین این سهرها ساهران هستند جادوی گشا. اندران صحرا که رست این زهر تر نیز روید است تریاق ای پسر. گویدت تریاق از من جو سپر که از زهرم من به تو نزدیک تر گفته او سهر است و ویرانی تو گفته من سهر است و دفعه سهر او برنامه های مصنوی معنوی مولوی را مینوکتاش و شهباز ایرج دهیا و اجرا کردند